به نام خدای یگانی مهربان سلام افثانه ها راه دراز زمانه ها رو سینه به سینه مردمان تا به زمانه ما طی کردند از هر دو روز زمان یادی و نشانی به همراه برداشته و امروز با کولباری گرانبه ها از میراث زندگی فرهنگی در سینه پدر بزرگ و مادر بزرگا پیش روی ماست در برمی هزار افسانه این هفته ای رو از سرزمین اسپانیا براتون نقل می کنن به نام دست سیاه برگرفته از کتاب قصه ها و افسانه های اسپانیا اثر میم با ترجمه از حسن سعدی روزی روزگاری در سرزمین اسپانیا مرد فقیری بود که از دار و ندار دنیا فقط یه اولاغ خاکستری و سه دختر زیبا داشت مرد برای امرار معاش خودش و فرزندانش هر روز به کوهستان های اطراف شهر می رفت و آب می آورد و به مردم شهر می فروخت. روزی از روزها اولاغ خاکستری مثل همیشه به طرف کوهستان در حرکت بود و در دل صحرای پوشیده از سنگ راه هر روزش رو تعیین کرد که یه دفعه از حرکت ایستاد و دیگه قدم از قدم برنداشت. مرد که پشت الاغ چرت میزد با پاشخه پا ضربه‌ای به حیوان زد و گفت: هی الاق تنبل، برو. اما الاق همچنان ایستاده بود و حرکتی نمیکرد. مرد در مقابل اولاغش چیزی دید که چشاش از فرط هرس گرد شد بله در مقابل اولاغ اونم وسط راه کلمی افتاده بود کلمی درشت و بزرگ که در اون بیابون برهوت مثل یه درخت قولاسا به نظر می رسید مرد فورا از اولاغ پایین پرید و الاق رو که از فرد حرس به شدت نفس میکشید کنار زد و گفت برو کنار ببینم برو کنار این کلم شاهانه به درد اولاغان نمیخوره اون مناسب منه و بعد کلم رو برنداز کرد و با تعجب گفت آه چه کلمی حاضرم قسم بخورم که توی تمام عمرم چنین این کلمی ندیدم حداقل غذای ده روز ما رو تأمین میکنه بعد ساقه کلم رو محکم گرفت و کشید و یه نفس صدای خشفگینی بلند شد کیه؟ کیه که ریشمو رو می مرد که به شدت حیرت زده شده بود بیهرکت موند بعد با تردید به دور برش نگاه کرد نه کسی رو ندید فکر کرد که صدا توی گوشش پیچیده دوباره کارش رو از سر گرفت و ساغی کلم و محکم گرفت و کشید باز هم صدای خشبینی بلند شد که کیه؟ کیه که ریش منو میکشه؟ ها؟ کیه؟ این بار مرد بی اختیار به عقب پرید با خودش گفت آه این کیه که منو اینجوری مسخره میکنه؟ و با نگاهش تا شعا دو فرسنگی صحرا رو برانداز کرد اما صحرا کاملا صاف بود و پوشیده از سنگ و کسی دیده نمیشد مرد با تعجب به الاقش نگاهی انداخت و گفت نکنه تویی که منو مسخره میکنی ها اما ا، ا، اما نه الاقا که نمیتونن مثل آدما حرف بزنند نه نه حتما خیالاتی شدم حتما و بعد با تمام قدرت کلم رو کشید و چیزی رو که دید شاید باورتون نشه بله مرد وقتی با تمام قدرت کلم رو کشید به زانو در اومد چون دید که در برابر چشم های تحجب زدش غولی به ارتفاع یک متر قد راست کرده مرد از ترس زبونش بند اومده بود و دست و پاش می قول غول اخمین کرد و فریاد زد آه که کریش منو میکشه ها؟ و بعد رو کرد به مرد و گفت آه کرم لعنتی راستویی که وقتی میخوام استراحت کنم و به شکل کلم توی آفتاب آروم بگیرم جرأت میکنی که مزاحم بشی ها؟ مرد با لکنت زبون گفت من نمیدونستم ارباب قول گفت که نمیدونستی الان بهت یاد میدم که چطور احترامم و حفظ کنی ساب کن مرد با شنیدن این حرف به التماس افتاد عرباب عرباب خواهش می کنم عصبانی نشین من, من نمی خواستم به شما اهانتی کنم و مزاحم استراحت شما بشم من من باید شکمی الاق و سه دختر رو سیر کنم به اضافه موجود بدبختی که الان پای شما رو میبوسه ارباب همه ما همیشه کرسته و شما هم کلم زیبایی بودین قول پرسید دخترات چند سالند؟ مرد به تندی پاسخ داد پاکیتا که از همه بزرگتره نوزده سال داره لولیتا هیچنه ساله و روزریتا هفته ساله ارباب. حالا, حالا اجازه بدین زودتر پیش اونا برگردم خواهش میکنم غول مکسی کرد و گفت خوب گوش کن ببین چی میگم من در زیر زمین در کاخی باشکوه زندگی میکنم و تنهاگ هستم به زنی نیاز دارم که مراقب خونه و زندگیم بمونه و هم دم و مونسم باشه دختر بزرگت گفته اسمش شی بود مرد با ترس جواب داد خدمتکار شما پاکیتا قول سری تکنداد و گفت آه بله بله پاکیتا اون باید به همسری من در بیاد اگه راضی به این وصلت باشی هم همجونت در امانه و هم از شر گرسنگی و نداری برای همیشه نجات پیدا می وگرنه و همین الان زیر پاملت می کنم خوب حالا خودت انتخاب کن چیکار می مرد که هنوز از ترس می بدون یک کلمه حرف اضافی گفت اه اه پاکیتا همسر شما می ارباب قول گول خنده کوتاهی کرد و گفت خوبه خوبه خوبه, خوبه. پس دیگه ما فردا بعد زور همینجا دخترت رو هم با خودت بیار من به شکل کلام منتظرتم فقط کافیه یکی از برگهای منو آخسته بکشی تا بیدار شم مرد گفت چشم الباب هرچی شما بگین قول یک کیسه پر از طلا و سکه‌های قیمتی جلوی مرد انداخت و از نظر محو شد کسی سکه های تلا رو برداشت و به طرف خونش برافتاد به محض ورودش به بخونه دختر بزرگتر یعنی پاکیتا متوجه ناراحتی پدر شد و از این رو اونو غرق سال کرد در حالی که دو دختر دیگه به سراغ کیسه های تلا رفتند تا چیزی برای خوردن تهیه کنند پدر مجبور شد اونچه که براش پیش اومده بود برای دختراش تعریف کنه پاکیتا که چشمانداز بانوی کاخ شدن اونو به حیرت در آورده بود به پدرش گفت من حاضرم تا با اون قول ازدواج کنم پدر که این حرف رو از زبون دخترش شنید آروم شد و با خودش گفت با کی تا دختر زرنگیه اره اون میتونه گلیم خودش عذاب بیرون بکشه اون میتونه مثل خیلی از زنای دیگه شوهره و ناکشو مطابق میل خودش به راه بیاره تازه این قبول بیش ها اونقدرها هم بد به نظر نمی رسید چون به من طلا داد و ما به لطف اون غذای سیر خوردیم آره آره نه قبول بدی نیست و بعد قرار شد صبح زود به همراه دختر بزرگش پاکیتا به دیدن حول بیشا و دم برن روز بعد پاکیتا پیرهن وصل دارش رو پوشید و دستمال سر مخصوص روزه یک رو به سر بست و سوار اولاخ شد و در حالی که پدرش اونا همراهی میکرد به سراغ قول رفتن اونا رفتند و رفتند تا به کلم بزرگ رسیدن دختر وقتی کلم رو که از روز قبل زیباترم شده بود دید فورا از اولاخ پایین اومد و به پدر گفت پدر پدر برگ کلم رو بکش من آمادم پدرم آهسته برگ کلم رو کشید و در یه چشم هم زدن غول آشکار شد بعد به پاکیتان نگاهی انداخت و با لحن مهربونی گفت خوش اومدی و به مردم گفت خیلی خوب میتونی بری هر وقت بخوای منو ببینی باید مثل امروز به دیدنم بیای و بعد یکی سگه تلایی دیگه به مرد داد مرد هم از دخترش خداحافظی کرد و به خونش برگشت غول هم دست زنش پاکیتا رو گرفت و اونو به اقامتگاه زیر زمینیش برد پاکیتا اونجا کاخ ازین دید با ستونهای مرمر که روی اونها با تلا نقاشی شده بود توی حیات کاخ پر بود از گلهای زیبا و معتر و حوزهای مرمر پاکیتا از دیدن اون همه زیبایی شگفت زده شده بود. حول بهش گفت همسر عزیزم پاکیتا اینجا خونه تو میتونی در اون با آرامش و سعادت زندگی کنی ولی تنها شرط که از من فرمان ببری. میتونی و هر جا که خواستی بری و هر کاری که دوست داشتی انجام بدی و هر خواسته که داری با صدای بلند اعلام کنی اون وقت برات حاضر میشه. از چیزی تعجب نکن. اینجا تو در امانی مگر اینکه خودت به خودت آزار برسونی و یادت باشه یادت باشه که هیچ وقت اون در طلایی انتهای سالن رو باز نکنی. اگر نه مصیبت سختی به سرت میاد. قول بعد به پاکیتا گفت من میرم و تا شب بر گول رفت و دختر فورا شروع کرد به بازرسی کاخ به اتاقی رفت که در اون آینه بزرگی از نغره صاف تصویرش رو منکز میکرد کیتا کفش های بندی و پیراهن فقیرانه و نخنماش رو توی آینه دید آهی کشید و گفت آه چقدر دلم میخواست لباس خوبی به داشتم یه لباس زیبا و شیک بلا فصل دست سیاهی پیدا شد و لباس های متعددی به رنگ های مختلف پرشا بود. پاکیتا تو این فکر بود که صاحب این دست های سیاه دیده نمیشه. ولی چون قرار بود از دیدن چیزی تعجب نکنه خودش رو سرگرم پوشیدن لباس رنگارنگ کرد. اما سرانجام از این کار حوصلش سرفت و به فکر افتاد سری به اتاق در طلایی بزنه. حالا دیگه كنجکاوی بد از عزیتش میکرد به انتهای سالون رفت و با خودش گفت آه, کسی چه میفهمه من به این در نزدیک شدم فقط لای اونو باز میکنم خیلی دلم میخواد ببینم اونجا چه خبره خلاصه پاکیتا بعد از چند بار نزدیک شدن به در در طلایی رو آرون باز کرد ولی فریادی از وحشت سر داد چون به محض باز کردن لایه در دستی سیاه اونو به داخل اتاق ممنوعه کشید و فوراً سرشو برید روز بعد پدر برای دیدن دختر بزرگش پکیتا به دیدن قول رفت و با احترام یکی از برگهای های کلم رو کشید و قول آشکار شد و گفت چی شده؟ با من کاری داری؟ مرد با دلتنگی جواب داد من اومدم از حال دخترم احوالی بپرسم قول گفت اون حالش خوبه و فقط از تنهایی رنج می بهتر فردا خواهرش لولیتا رو به اینجا بیاری اون حتما از دیدن خواهرش خوشحال میشه و از تنهایی در میاد و بعد قول کیسه‌ای پر از طلا به مرد داد و اونو روانی خونش کرد مرد به خونی که رسید به دخترش لولیتا گفت که فردا همراه اون به دیدن خواهرش بره لولیتای کنجکاف هم با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کرد اما رزاریتا کوچکترین دختر خانواده کمی نگران بود و به خواهرش گفت مواظب باش خواهر من نگران تو هم همونطوری که نگران خواهرم پاکیتا هستم خلاصه فردا صبح لولیتا به همراه پدرش به دیدن غول رفتند تا قول لولیتا رو به نزد خواهرش پاکیتا ببره وقتی لولیتا با غول تنها شد از اون پرسید خب خواهرم کجاست؟ دلم حسابی براش تنگ شده قول گفت از خواهرت نپرس چون اون الان توی کاخ نیست لولیتا با تعجب و نگرانی پرسید چی؟ خواهرم توی کاخ نیست؟ پس اون کجاست؟ حالش خوبه؟ غول گفت دیگه چیزی از خواهرت نپرس که جوابی نمیشنوی تو توی این کاخ آزادی و هر کاری که میخوایی میتونی انجام بدی فقط یادت باشه در طلای انتهای سالن رو باز نکن چون بدبختی به سرت میاره قول این رو گفتو و ره. لولیتا با عجله همه جای کاخ رو گشت. تمام درها رو باز کرد و تنها یک در طلایی باقی مونده بود. همون در انتهایی. نتونست تاخت بیاره و با کنجکاوی اون در طلایی رو باز کرد. و اونم مثل خواهرش پکیتا با دست سیاهی به داخل اتاق کشیده شد و سرش هم بریده شد. چند روزی گذشت مرد دوباره به سراغ قول اومد و از اون در مورد دو دخترش پرسید و قول به مرد گفت که دو دخترش در کنار هم خیلی خوشحالند و ناراحتیشون فقط ندیدن خواهر کوچیکشونه و از مرد خواست که فردا روزاریتا کوچکترین دختر خانواده رو هم پیش دوتا خواهرش بیاره تا حسابی بهشون خوش بگذره و مرد هم قبول کرد که فردا دختر دیگش رو برای دیدن دو خواهرش نزد قول بیاره فردای اون روز دختر کوچیک همراه پدرش راه افتاد و چند ساعت بعد همراه با قول برای دیدن خواهرانش به اقامتگاه زیرزمینی اون رفت قول از روزریتا خواست که از اون فرمون برداری کنه و هیچ وقت به در طلای انتهای سالو نزدیک نشه و روزاریتا هم ول داد که از فرمان غول اطاعت کنه و توجهی به در طلایی نداشته باشه روزاریتا دختر عاقل و محتاطی بود بعد از رفتن قول تمام کاخ رو گشت اما به در طلایی نزدیک هم نشد وقتی گرسنه شد دست سیاه براش انواع قظاها را آماده کرد و بهترین لباسهای ابریشمی و نقره دوزی شده رو برایش آورد چند روز بعد که قول به کاخ برگشت روزریتا به گرمی از اون استقبال کرد و براش حرفهای قشنگی در مورد زندگی آدم ها،, ها و جنگل ها و روزهای بارونی زد و حسابی قول رو سرگرد کرد. خلاصه روزها و روزها گذشت. روزریتا در قیاب قول به کارهای خونه می رسید. آواز می خوند، کار می کرد و وقتی هم قول به خونه برمی گشت, با مهربونی با اون برخورد کرد و سعی داشت همه چیز طبقی خواستی قول باشه. حالا دیگه غول به سابق زشت و ترسناک نبود و روزاریتا پی برد که شوهر خواهرش یعنی همون قول بیشا خودم چندان هم قول بدی نیست باز هم روزها گذشت تا اینکه یه شب که روزریتا در گوشه نشسته بود و داشت برای خودش آواز میخوند یه دفعه یه جوون ناشناسی وارد اتاق شد روزریتا با دیدن جوون ناشناس از جاش بلند شد و خواست فرار کنه. ولی جوون ناشناس گفت نه نه صبر کن نه ترس. من همون شوهر خواهرت پاکیتا هستم. همون گول زشتی که تو در حقش مهربونی ها کردی و از اون فرمون برداری داشتی. تو با تعجب به جوون نگاه کرد و گفت یعنی یعنی تو واقعا همون گوله؟ جوون سری داد و گفت بله بله. اربابم شاه ها منو به خاطر نافرمانی محکوم کرده بود با اون قیافه در این قصد زندگی کنم تا وقتی که کسی بیاد و چند ما مطیع و رازدار من باشه من صد سال به دنبال کسی بودم که از من اطاعت کنه و بالاخره تو این کار رو کردی و باعث شدی من به شکل اصلی خودم برگردم من از فردا می به زمین برگردم و زندگی سعادتمندی رو شروع کنم تمام زنهایی که به اینجا آمدن به خاطر نافرمونیشون به کیفرشون رسیدن و فقط تو بودی که تونستی از کیفری مسلم نجات پیدا کنی و من رو هم نجات بدی بیا بیا این انگوشتر رو بگیر نگین اون مثل آب زلال و شفافه اگه نافرمانی کنی مثل یاغود قرمز میشه در هر حال در انتهایی سالون و قولی که به من دادی رو فراموش نکن جوون رفت و فردا بیاد و همراه روزاریتا به زمین برگردن روزاریتا بعد از رفتن جوون یا همون قول بیش خودم با خودش گفت: من مطمئنم که خواهرای بیچاره من، در پس اون در طلایی انتهای سالون زندانی شدن خدا کنه،, خدا کنه زنده باشن و اتفاقی برشون نیافتاده باشه همین نگرانی باعث شد که روزاریتا هم به سراغ در طلایی بره اون در رو آروم باز کرد و در وسط اتاق دو خواهرش رو دید که سر بریده در کنار هم افتاده بودند روزاریتا با وحشت پا به فرار گذاشت و نالان گفت شوهر خواهر من یه دیو بیرحمه اون یه قول دروغگوه؟ اون وقت متوجه شد که نگین انگشترش به رنگ خون در اومد مرد جوون روز بعد که برگشت به راحتی متوجه شد که چی شده به روزاریتا گفت تو به من شک کردی و با این نافرمونید به هر دوی مالت کردی میدونی که امشب جادو تموم میشه ولی در تلایی رو باز کردی و در نتیجه من نمیتونم به زمین برگردم ولی به خاطر مهربونی و محبتی که در حق من کردی و در این مدت به خونه و زندگیم رسیدگی کردی منم دو خواهرت رو زنده میکنم تا با هم به خونتون برگردین روزاریتا که پی برد جوون قلب مهربونی داره با بغت گفت کاش کاش تو هم میتونستی به زمین برگردی جوون کلام روزاریتا رو غد کرده گفت نه دیگه nah, امکان نداره اگه به من اعتماد میکردی و از فرمان من تا آخرین لحظه اطاعت میکردی الان منم میتونستم همراه شما به زمین برگردم بعد رفت و دو خواهر رو زنده کرد و سه خواهر از کاخ بیرون رفتن جوان در آخرین لحظه به روزاریتا گفت تو دختر عاقل و خوشخلبی هستی امیدوارم خوشبخت بشی به در عرض چند دقیقه همه چیز محف شد و خواهر خودشون رو در وسط بیابون خشک و سوزان و زیر آفتاب داغ تابستون دیدن اونها با قدمهای شتابان به طرف خونشون برافت با پاکیتا و لولیتا خیلی خوشحال بودن روزاریتا هم خوشحال بود اما ته دلش بیاد قول و خودم بود و دلش پرویونی سون اونچه که براتون نقل کردم افثانه دست تقدیر بود از اسپانیا برگرفته از کتاب قصه ها و افسانه های اسپانیا اثر میم با ترجمه ی از حسن سر هزار افسانه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار بحار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار آسیه همتی. تهیه كننده زهرا ابدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرو